مصنوی معنوی مولوی برنامه یک و هفتاد رفتن قاضی به خانه زن جوهی و حلق زدن جوهی به خشم بردر و گریختن قاضی در صندوق مکر زن پایان ندارد، رفت شب، قاضی زیرک، سوی زن بهر دب زن دو شمع نقل مجلس راست کرد گفت ما مستیم به این آب خورد اندراندم جوهی آمد در بزد جست قاضی محرب تا درخزد. غیر صندوق ندید و خلوت رفت در صندوق از خوف انفتی اندر آمد جوهی و گفت، ای حریف، ای و بالم در ربیع و در خریف. من چه دارم که فداات نیست آن که من فریاد داری هر زمان. بر برلب خشکم گشاد استی زبان، گاه مفلس خانیم گه، قلطبان این دو علت گربود ای جان مرا آن یکی از توست و دیگر از خدا من چه دارم غیر آن صندوق کان هست مایه تهمت و پایه گمان خلق پندارند دارم درون دادوا گیرند از من زین زنون صورت صندوق بس زیباست لیک از اروز و سی خالی است نیک چون تن زراق خوب و بابقار اندران سله نیابی غیر مار من برم صندوق را فردا بکو پس بسوزم در میان چهار تا ببیند معمن و گبر و جهود که در این صندوق جز لعنت نبود گفت زن هی hey, درگذر ای مرد از این خارد سوگندان که نکنم جز چنین از پگه حمال آوردو چوباد، زود آن صندوق بر پشتش نهاد اندر آن صندوق قاضی از نکال بانگ میزد زد حمال ای و ای حمال؟ کرد آن حمال راست و چپ نظر که از چه سو در می رسد بانگ و خبر حاتف است این دائی من ای عجب یا پری یهم می پنهان طلب چون پیاپی گشت آن آواز و بیش گفت حاطف نیست باز آمد به عاقبت دانست کان بانگ و فغان ز صندوق و کسی در و نهان آشقی کو در غم معشوق رفت گرچه بیرون است در صندوق رفت عمر در صندوق برد از اندهان جز که صندوق نبیند از جهان آن سری که نیست فوق آسمان از هوس او را در آن صندوق دان چون ز صندوق بدن بیرون رود او گور سوی گور می شود. این سخن پایان ندارد، قاضیش گفت ای هممال و ای صندوق کش، از من آگه کن درون محکمه، نایبم را زودتر با این همه، تا خرد این را بزر زین بیخرد، همچنین بسته به خانه ما برد، ای خدا، بگمار قوم روحمند، تازه صندوق بدن من واخرند. خلق را از بند صندوق فسون کی خرد جز انبیا و مرسلون؟ از هزاران یک کسی خوشمنظر است که بداند کو به صندوق اندر است. او جهان را دیده باشد، پیش از آن، تا بدان زد این زدش گردد عیان زین سبب که علم ظاله مؤمن است، عارف ظاله خود است و موقن است. آن که هرگز روز نیکو خود ندید، او در این ادبار، کی خواهد تپید یا به تفلی در اسیری افتاد یا خود از اول زمادر بنده زاد ذوق آزادی ندیده جان او هست صندوق سور میدان او دائمان محبوس اقلش در سور از قفص اندر قفص دارد گذر منفظش نه از قفص سوی الا در قفس ها می رود از جا به جا در نوبی ان استطاعتم فنفزو این سخن با جن و آمد زهو گفت منفظ نیست از گردونتان جز به سلطان و به وحی آسمان گر ز صندوق به صندوق رود او سمایی نیست صندوقی بود. فرجای صندوق نو نو مسکر است در نیابد کو به صندوق اندر است. گر نشد غره بد این صندوق ها، همچو قاضی جوید اطلاق و رها، آن که داند این، نشانش آن شناس، کو نباشد فغان و بهراس، همچو قاضی باشد او در ارتعاد کی براید یک دم از جانش شاد. آمدن نائب قاضی میان بازار و خریداری کردن صندوق را از جوهی. نایب آمد گفت صندوقت به چند گفت نهصد بیشتر زر می دهند من نمی آیم فروتر از هزار گر خریداری گشا کیسه بیار گفت شرم دار ای کو تهنمد قیمت صندوق خود پیدا بود گفت بی شرا خود فاسدی است بای زیر گلیم این راست نیست برگشایم گر نمی ارزد مخر تا نباشد بر تو حیفه ای پدر گفت ای ستار بر مکشای راز سر به بسته می خرم با من بساز سطر کن تا بر تو ستاری کنند تا نبینی ایمنی بر کس مخند بس در این صندوق چون تو ماندند، خیش را اندر بلا آن آنچه بر تو خواه آن باشد پسند بر دگر کس آن کن از رنج و گزند زان که بر مرساد حق وندر کمین میدهد پاداش پیش از یوم دین. آن عظیم العرش عرش او محیط تخت دادش بر همه جانها بسید. گوشه عرشش تو پیوسته است. هین مجنبان، جز بدین و داد دست تو مراقب باش بر احوال خیش نوش بین در داد و بعد از ظلم نیش گفت آره این چه کردم استم است لیک هم میدان که بادی ازلم است گفت نایب یک به یک ما بادییم با سواد وجه اندر شادیم همچو زنگی کوبود شادان و خش او نبیند غیر او بیند رو خش ماجراب بسیار شد در من یزید داد صد دینا رو آن از وی خرید هردمه صندوقی عیبد پسند، حاطفان و غیبیانت می خرند. در تفسیر این خبر که مصطفی صلوات الله علیه فرمود من کنتو مولاهو فعالیون مولاهو تا منافقان تنه زدند که بس نبودش که ما مطیع و چاکری نمودیم او را چاکری کودک خلمالود من هم می فرماید. زین سبب پیغامبر با اجتهاد نام خود وان علی مولا نهاد. گفت هر را منم مولا و دوست ابن ام من علی مولای اوست. کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند. چون به آزادی نبوت حادی است، مؤمنان را زنبیا آزادی است. ای گروه مؤمنان، شادی کنید، همچو سر و سوسن آزادی کنید. لیک می هردم شکر آب، بی زبان چون گلستان خوشخزاب. بی زبان گویند سر و سبززار شکر آب و شکر عدل نوبهار ها پوشیده و دامنکشان مست و رقاس و خوش و انبرفشان جاز و جز وابستن از شاه بهار جسمشان چون درج پردر سمار مریمان بی شوی آبست از مسیح، خامشان بی لاف و گفتار فسه. ماه ما به نطق خوش است. هر زبان نطق از فر ما یافته است. نطق عیسی از فر مریم بود. نطق آدم پرتو آن دم بود. تا زیادت گردد از شکر ای پس نبات دیگر است اندر نبات. عکس آن اینجاست زل من قنع اندر این طور است ازز من تمع در جوال نفس خود چندین مراو از خریداران خود غافل مباش باز آمدن زن جوهی به محکمه قاضی سال دوم بر امید وظیفه پارسال و شناختن قاضی او را. بعد سال باز جوهی از مهن رو بزن کرد و بگفت ای چوست زن؟ آن وظیفه پار را تجدید کن، پیش قاضی از گله من گو سخون. زن بر قاضی درآمد آمد با زنان، مرزن را کرد آن زن ترجمان، تا به نشناسد ز گفتن قاضیش، یاد ناید از بلای مازیش. هست فتنه غمزه غماز زن، لیک آن ست تو ز زاباز زن. چون نمی تانست آباز فراشت، غمزه تنهای زن سود نداشت. گفت قاضی را تو خسمت را بیار، تاده هم کار تو را با او قرار جوهی آمد، قاضیش نشناخت زود کو با وقت لقیه در صندوق بود زو شنیده بود آواز از برون در شرا و او در نقص و فزون گفت نفقی زن چرا ندهی تمام؟ گفت از جان شرع را هستم غلام، لیک اگر میرم ندارم من کفن، مفلس این لیبمو شش پنج زن. زین سخن قاضی مگر بشناختش، یاد آورد آن دغل باختش. گفت آن شش پنج با من باختی پار اندر شش درم انداختی نوبت من رفت امسال آن قمار با دگر کس باز دست از من بدار از شش و از پنج آرف گشت فرد محترز گشت است زین شش پنج نرد راست او از پنج حس و شش جهت از برای آن همه کرد آگاهت شد اشاراتش اشارات ازل جاوز ال اوهام ترن وعت زینچه شش گوشه گر نبود برون چون برارد یوسفی را از درون وارد بالای چرخ بی جسم او چون دلو در چه چارکن یوسفان چنگال در دلوش زده رسته از چاه و شه مصره شده دلوهای دیگر از چه آب جو او فارغ از آب از حاب جو ها غواس آب از بحر قوت دلوه او قوت و حیات جان حوت دلوه ها وابسته چرخ بلند دلو او در اسبعین زورمند دلوه چی و حبل چی و چرخ چی؟ این مثال بسرکیک است ای اچی؟ از کجا آرم مثال بیشکه است؟ و آن نه آید و نه آمده است صد هزاران مرد نهان در یکی صد کمان و تیر درج ناوکی مارمیت ازرمیتی فتنه صد هزاران خرمن اندر هفنه آفتاب در یکی زره نهان ناگهان آن زره بک شاید دهان زره زره گردد افلاک و زمین پیش آن خورشید چون جست از کمین این چون این جانه چه در خورده تن است هین بشو تن از این جان هر دوده است تن گشته به ساقه جان بساست چند تاند بهر در مشک نشست ای هزاران جبرایل اندر بشر ای مسیحان نهان در جوف خر ای هزاران کعبه پنهان در کنیز، ای غلط انداز افریت و بلیس سجدگاه لامکانی مر بلیسان را زتو و ایران دکان که چرا من خدمت این تین کنم صورت را من لقب چون دین کنم نیست صورت چشم را نیکو بمال تا ببینی شعشع نور جلال باز آمدن به با شرح قصه شاهزاده و ملازمت او در حضرت شاه شاهزاده پیش شاه حیران این هفت گردون دیده در یک مشت تین هیچ ممکن نه به بحث لب گشود لیک جان با جان دم خاموش نبود. آمده در خاطرش که این بس خفیست. این همه معنی معنیست. پس صورت ز چیست؟ صورت از صورتت بیزار کن. خفته هر خفته را بیدار کن. آن کلامت می از کلام وان سقامت می جهاند از سقام پس سقام عشق جان صحت است رنجهایش حسرت هر راحت است ای تن اکنون دست خود زینجان بشو ور نمی جزین جان به جو حاصل آن شه نیک او را می نواخت او از آن خورشید چون مه می گداخت آن گداز عاشقان باشد نمو همچون مه اندر گدازش تازرو. جمعه رنجوران دوا دارند امید، نالد این رنجور کم افزون کنید. خوشتر از این سم ندیدم شربته، زین مرض خوشتر نباشد سهته. زین گناه بهتر نباشد تاعته، سالها نسبت دم ساعته. مدت بود پیش این شه زین نسق. دل کباب و جان نهاده بر طبق. گفت شه از هر کسی یک سر برید. من ز شه هر لحظه قربانم جدید. من فقیرم از ذر، از سر محتشم صد هزاران سر خلف دارد سرم با دو پا در عشق نتوان تاختن با یکی سر عشق نتوان باختن هر کسی را خود دو پا و یک سر است با هزاران پا و سر تن نادر است زین سبب هنگامه ها شد کل هدر هست این هنگامه هردم گرمتر مدن گرمی استن در لامکان هفت دوزخ از شرارش یک دخان